یک چند به کودکی با استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. پاک از عدم آمدیم، ناپاک شدیم، آسوده در آمدیم و غمناک شدیم، بودیم ز آب دیده در آتش دل، دادیم به باد عمرو در خاک شدیم. در جستن جامه جم جهان پیمودیم، روزی ننشستیم و شبی نقنودیم، زستاد چو وسپ جام جم بشنودیم، خود جام جهان نمای جم من بودیم. فرزین پرزین که که غم هات شدم، از اسب پیاده از جفاهات شدم، از بازی فیل و شاه چون درماندم، رخ بر رخ تو نهادم مات شدم.